بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارفت قسم به با فرستاده شده های پیاپی پی و به هم پیوسته و به آنها که بشات هجوم می آورند قسم به نشر کنندگان که به گونه نشر می کنند و قسم به آنها که به گونه روشنی جدا می کنند و قسم به آنها که پند را القاء می کنند برای اینکه عضری باشد یا بیمی بیگمان آنچه با شما وعده داده شده عملی شده نیست پس چون ستارگان ناپدید شوند و چون آسمان شگافته شود و هنگامی که ها برکنده و هموار شوند و هنگامی که به پیانبران معیادی مقرر شود برای کدام روز این چیزها به تعویق افتاده برای روز فیصله کن چیزی چیز و تو آموخت که روز فیصله کن چیست وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق آیا پیشینیان را به سبب اینکه از حق انکار کردن هلاک نکردیم سپس آیندگانی را که از آنها پیروی کنند در پی ایشان می فرستیم آره با مجرمان چنین رفتار می کنیم وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق آیا شما را از آبینا چیزی نیافریدیم، سپس آن را در آرامگاه محفوظ قرار دادیم تا مدت معینی پس ما توانستیم آن را انجام دهیم. پس چی خوب تواناییم تا رستاخیز را برپا کنیم وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق آیا زمین را محل اجتماع انسان ها قرار ندادیم هم برای زندگان و هم برای مردگان و در آن کوههای استوار و بلند را قرار دادیم و به شما آب بوارایی نوشانیدیم وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق به ایشان گفته می شود به سوی همان چیزی که همواره از آن انکار می کردید بروید بروید به سوی سایه که سه شاخه دارد سایه ای که نه آرام بخش است و نه از شالۀ تند آتش جلوگیری می کند. آتشی که هر آن از خود شرارههایی به بزرگی قصر پرتاب می کند گویی آن ها قطاری از اشتران رنگ است وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق این روزی است که سخن نمی زنند و نه برایشان اجازه داده می شود تا آزرخواهی کنند وای در آن روز به حالی تکذیب کنندگان حق این روز کن میان حق و باطل است که شما و پیشینیان را جانا کرده ایم اگر هیله یعنی چاره دارید آن را بکار برید وای در آن روز به حال تکسی کنیدگان حق برعکس نیکوکاران در میان سایه های آرام بخش و کنار چشمه ها به سر میبرند و از میوه که دلخواهشان است برخوردار باشند بخورید و بیاشامید به گوارایی و سبب اعمالی که در دنیا انجام می دادی بگمان مانی پوکاران را چهین پاداش می دهیم. وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق گاران بخورید و برخوردار شوید در این دوره محدود آره شما واکن مجرم می باشید. وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق و هنگامی که به ایشان گفته شود روکو کنید رو کو نمی کنند وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق پس آیا بعد از آنکه که قرآن را قبول ندارند به کدام سخن ایمان می آورند